تراشیده ب یا نه چرا؟ بله نوها تراشیده بشند روز هفتم. چون اینها کسیفا ناپاکا در حدیث بینها ازا آمده و ازا برای ناپاکی بعض نوها رو نمی تراشند خلاف سنت این چیز نجیس و اونها رو